دوستای خوبم، مهمترین مفهومی که در عهد جدید آموزش داده میشه مفهوم پادشاهی خداست. اما ما به مطالعه اون در عهد قدیم شروع کردیم. خدا مایله پادشاه قوم خودش باشه و امروز هم اشتیاق اون همینه. یک پادشاه افراد وفاداری داره. خدا از ما دعوت میکنه به پادشاهی اون ملحق بشیم و از افراد وفادار پادشاهی اون باشیم. به درسی که درباره نوشتجات پادشاهی در عهد قدیم داریم گوش کنین این شما و این معلم ما کتاب اول و دوم سمائیل و اول و دوم پادشاهان و اول و دوم تواریخ به عنوان کتاب‌های تاریخی شناخته شدند هر سه این کتاب‌های دو بخشی وقتی نوشته شدند به عنوان یک کتاب واحد شناخته میشدند. بنابراین اول و دوم پادشاهان فقط پادشاهان خوانده میشد. این کتابها درباره پادشاهانی که بر اسرائیل و یهودا حکومت کردند با ما می کنند. همونطور که در دوم ساموئل هم دیدیم مفهوم اصلی کتابهای پادشاهان پادشاهی خدا هست. همونطور که قبلا هم اشاره کردم در این مفهوم در عهد قدیم راحتتر از عهد جدید هست. پادشاهی خدا مفهوم بسیار مهمی در عهد جدید هست. این کتابهای پادشاهان در عهد قدیم ما را برای بررسی عهد جدید آماده می مفهوم پادشاهی خدا دقیقاً اینه که خدا پادشاه است و یک پادشاهی داره. خدا میخواد که پادشاه قوم منحصر به فرد یهود باشه. اگر بنی اسرائیل این ترتیب رو میپذیرفتند و از افراد خدا میشدند، اون وقت پادشاهی خدا به پادشاهی ملی، جغرافیایی و عملی خدا بر روی زمین تبدیل میشد. اما در اول سموئیل بنی اسرائیل گفتند که این ترتیب رو نمی‌خوان و خدا رو به عنوان پادشاه رد کردند. پادشاهان بنی اسرائیل در اول و دوم پادشاهان در اراده مستقیم خدا نبودند اما در اراده مجاز خدا قرار داشتند کتاب اول و دوم پادشاهان به ما از پادشاهی انسان میگه که در نتیجه رد کردن پادشاهی خدا بر روی زمین به وجود آمدند خدا پادشاهی خود رو میخواست اما بنی اسرائیل پادشاهی انسان رو خواستند بانی اسرائیل خواست که پادشاهی از خودش داشته باشه در کتاب اول پادشاهان میخونیم که این پادشاهی انسان به دو بخش تجزیه شد و در کتاب دوم پادشاهان میخونیم که هر دوی این پادشاهی جدا شده به اسارت رفتند یادتون باشه از اونجایی که این کتاب های تاریخی هستند ما میخواییم به ها و ها نگاهی بندازیم ما هوشدارهای زیادی رو در کتاب پادشاهان می‌بینیم چون که بسیاری از این پادشاهان شریر بودند و عواقبش برای اون قوم بسیار وحشتناک بود وقتی عواقب داشتن چنین پادشاهان شریری رو میخونید یادتون باشه که خدا مسئول هیچ کدوم از اون عواقب نیست خود مردم مسئول هستن چون اونا خودشون اون پادشاهان رو خواستند. پادشاهان خودشون مسئول شرارت هاشون بودن اهمیت و شاخص بودن این دو کتاب پادشاهان در این هست که اونها تجزیه، فروپاشی و به اسارت رفتن پادشاهی رو ثبت کردند شما میتونید این دو کتاب پادشاهی رو کتاب پیشرفت و انحطاط قوم یهود بنامید آیات مهیبی رو در دوم پادشاهان خواهیم دید در باب 17 آیی 22 شما به اسارت رفتن پادشاهی شمال توسط قوم آشور رو خواهید دید قوم آشور بر اسرائیل غلبه کردند یعنی بر ده تایفهی که ستاد فرماندهی خودشون رو در شمال اسرائیل مستقر کرده بودند این ده طایفه در قول و زنجیر به آشور برده شدند تا اونجایی که در کتاب مقدس میبینیم، دیگر هرگز خبری از این ده طایفه و یا پادشاهی شمال نمی‌شنویم آنها قومهای گمشده اسرائیل هستند باب 17 دوم پادشاهان عملاً انهدام پادشاهی شمال رو توسط اسارت آشور شهر میده در دوم پادشاهان باب 25 درباره اسارت وحشتناک پادشاهی جنوب در سرزمین نبوکت نصر، و یا سرزمین بابل میخونیم وقتی که اورشلیم سقوط کرد اسیرانی که از قتل عام نجات یافته بودند، به بابل برده شدند. هفتاد سال بعد فارس بر بابل غلبه کرد کروش کبیر امپراتور فارس توسط خدای قادر مطلق برانگیخته شد تا فرمانی صادر کنه که هر اسیر یهودی که در فارس زندگی میکرد آزاده که به اسرائیل برگرده و معبد شهر یا کشورش رو از نو بنا کنه بعد ما کتاب‌های تاریخی بعد از اسارت رو مطالعه خواهیم کرد از ازرا نهمیا و استر درباره بازگشت بنی اسرائیل از اسارت بابل با ما صحبت می‌کنند کتاب استر چیزی رو شرح میده که در فارس مرکزی در بین بنی اسرائیل یعنی اونهایی که نخواستن به اسرائیل برگردن اتفاق افتاد وقتی که بررسی کتاب استر رو تموم می‌کنید ما مطالعه امون رو از کتابهای تاریخی عهد قدیم جنبندگی خواهیم کرد. تمامی انبیایی که کتابهای نبوتی عهدقدیم قدیم رو نوشتند در جایی از وقایع ثبت شده در کتابهای تاریخی عهد قدیم قرار دارند. وقتی که بررسی کتابهای شعر عهدقدیم قدیم رو تموم کنیم این انبیا رو خواهیم دید. در که ترتیب زمانی قرار گرفتن این انبیا در کتابهای تاریخی چالش بزرگیه. من پیشنهاد می‌کنم که نموداری تهیه کنید که نشون میده این انبیا در کدام قسمت از این متن‌های تاریخی قرار دارن علاوه بر ارزش تاریخی این کتاب‌های تاریخی اونها به ما نمونه‌ها و هشدارهای زیبایی رو ارائه میدن وقتی که این دو پادشاهی رو مطالعه می‌کنیم با مردان بزرگی مواجه می‌شیم که به اونها انبیا میگیم میخوایم ببینیم که یک نبی کی هست معنی کلمه نبی عملا اینه صحبت کردن برای خدا کلمه نبی در زبان اصلی کلمه مرکب هست که تشکیل شده از کلمه پرو به معنی ایستادن در مقابله و کلمه فانو به معنی روشن کردن هست این مفهومی هست از کارهایی که انبیا انجام دادند. یعنی پیام خدا رو به طور واضح در مقابل قوم و پادشاهان روشن کردند. موسا کسی بود که کلام خدا رو دریافت کرد اما از به بعد به انبیا گفته شده که بیستن و کلام خدا را که قبلا به موسی داده شده برای قوم موعظه کنند پس بعد از یوشا میبینیم که انبیا کلام مکتوب خدا را موعظه می‌کنند انبیا همچنین مکاشفاتی از خدا دریافت می‌کردند انبیا کلام از پیش گفته خدا را اعلام می‌کردند و معنیش اینه که اونها واعظ بودند در زمانی انبیا مانند هواشناسان حال و هوای روحانی رو پیش بینی می‌کردند اونها پیشگویی میکردند انبیا اغلب وقایعی رو که قرار بود اتفاق بیفته پیشگویی میکردند بود خدمت انبیا ما رو شیفته میکنه وقتی که از یک نبی صحبت میکنیم اغلب به این فکر میکنیم که اونها پیشگویان روحانی هستند اگرچه اون هم بخش مهیجی از خدمات انبیا هست بود پیشگویی به نسبه بخش کوچکی از خدمت آنهاست وظیفه اصلی یک نبی این بود که کلام خدا رو موعظه کنه بنابراین او باید در مقابل کلام خدا می ایستاد و اون رو برای قوم خدا روشن می‌کرد. کاهنین معلم بودند. کاهنین باید به سوالات مردم در مورد کلام خدا جواب میدادند و کتاب مقدس رو به اونها آموزش میدادند. نقش انبیا نصیحت کردن مردم بود که به آنچه کلام خدا میگه عمل کنند. انبیا زمانی به جای خدا صحبت می‌کردند که لازم بود مردم رو نسبت به رویه زندگیشون به چالش بکشند. اکثر اوقات وقتی قوم خدا از خدا اطاعت نمی کرد، انبیا به جای خدا حرف می زدن. در اول پادشاهان اولین مثال ایلیا هست و الیشه اولین نمونه انبیا در دوم پادشاهان هست. یادتونه وقتی کتاب داوران رو بررسی می کردیم، گفتیم که یوشا در تربیت جانشینی برای خود موفق نبود. هیچ کدام از داورانی که در های مختلف بر اسرائیل حکومت می نیست، در تربیت جانشین موفق نبودند. یادتونه که مرتبا از شکست رهبری در دوره هایی که داوران در اون شکست خوردن انتقاد کردیم. ایلیا یک نمونه و سرمشخ است چون که ایلیا جانشینی برای خود تربیت کرد. وقتی خدمت ایلیا به پایان رسید، او ردایش رو گرفت و بر مرد دیگری انداخت و اون مرد دیگر هم نبی بزرگی شد. نام او الیشه بود. اگرچه ما بر این دو نبی بزرگ در کتاب‌های پادشاهان تاکید می‌کنیم، می‌خوام مطمئن بشم که شما بعضی از این انبیاء کوچک رو که زیاد معروف نیستند هم فراموش نکنید در اول پادشاهان 22 یکی از محبوب ترین انبیاء من میکا هست وقتی پادشاهی تجزیه شد پادشاهان از هم جدا شده گاهی با هم متحد می شدن. اگرچه اکثر اوقات با هم دشمن بودند. همه پادشاهان در پادشاهی شمال شریر و مرتد بودند، اما پادشاهی جنوب یهودا هر از گاهی پادشاهی خوب داشتند. اون پادشاهان مندازي داوود خوب نبودند اما بعضی از اون پادشاهان خداترس بودند. حزقیا، یهوشافات و یوشیا پادشاهان خوبی بودند. اگرچه هرگز نفهمیدم چرا، اما وقتی که تحصیل می کردم، یکی از وزیفه های من در مطالعه تاریخ یهودیم بود که باید نام همه پادشاهان اسرائیل و یهودا رو حفظ میکردم. و میدیدم که در زمان حکومتشون شریر بودن یا خوب. همه پادشاهانی که بر اسرائیل حکومت کردند شریر بودند و فقط چند پادشاهی که بر یهودا حکومت کردند خوب بودند. من لیست کوتاهی از پادشاهان خوب رو حفظ کردم و می‌دونستم که بقیه شریر هستند و به این ترتیب اون قسمت از تکلیفم برام آسون شد. در باب 22 اول پادشاهان پادشاهان شمال و جنوب برای یک ملاقات مهم یک جا جمع شدند. پادشاه اسرائیل اخاب بود و مردی بسیار شریر بود. یهوشفات پادشاه یهودا بود. یهوشفات آمیزه ای از خوب و بد بود، یعنی کمی بدی و کمی خوبی داشت. وقتی این دو پادشاه با هم ملاقات کردند، اخاب یهوشفات رو به چالش کشید. اخاب گفت: قوم آشور هنوز شهر ما راموت جلعاد رو در تصرف دارند. چرا لشکرت رو نمیفرستی که به همراه لشکر من راموت رو آزاد کنند؟ شما از کاری که این دو پادشاه با هم کردن تعجب خواهید کرد. وقتی اونها رو بشناسید نمیتونید از تعجب خودداری کنید که مردی مثل یهوشافات با مردی مثل اخاب همکاری کنه. اخاب تماما فاسد بود. اخاب با ملکه ایزابل ازدواج کرده بود. اخاب و ایزابل چهارصد و پنجاه نبی شریع داشتند که همشون مشرک بودن. اونها انبیای بت بل بودن. به غیر از اون چهارصد نبی دیگر داشتند که روی هم رفته هشتصد و پنجاه نبی وقتی اخاب یهوشفات رو به چالش کشید و گفت بیا با هم به جنگ آشور بریم یهوشفات پرسید آیا از انبیا سوال ای؟ در اون دوره از تاریخ رسم بر این بود که هر حرکتی رو قبل از انجام دادن باید از انبیا سوال میکردن. اخاب گفت تو انبیا میخوای؟ تا دلت بخواد نبی دارم من 850 نبی دارم پس اخاب از انبیا خود پرسید آیا ما میتونیم به جنگ آشور بریم و اون انبیا اخاب و ایزابل انبیایی خدا ترس نبودن و می‌دونستند که اخاب دوست داره چی بشنوه همگی گفتند بله برو و با آشور بجنگ تو پیروز خواهی شد یکی از اون انبیای دروغین صدقیا بود که شاخهای آهنین برای خود ساخته بود و مانند یک گاوه نر به نظر می‌رسید او گفت خداوند چنین می‌گوید ارامیان را به اینها خواهی زد تا تلف شوند یهوشفات اخاب رو به کناری کشید و گفت آیا در اینجا غیر از اینها نبی خداوندی نیست که از او سوال نماییم؟ این انبیا همه به نظر دروغین میآیند. مخصوصا اون که مثل گاوی شاخ بر سر گذاشته. یعنی اینجا هیچ نبی واقعی وجود نداره. من به این انبیا باور نمی کنم و به اونها اعتماد ندارم. اخاب گفت یک مرد دیگر هست که به واسطه او از خداوند میتونیم سوال کنیم. اما او اینجا نیست و من از او نفرت دارم. چونکه او هرگز چیز خوبی نبووت نمیکنه او همیشه چیزهای بد موعظه میکنه یهوشافت پرسید نام او چیست بروید و او رو بیارید اخاب گفت نام او میکا یا ابن گمله است اخاب از روی اکراه کسی رو دنبال میکا فرستاد وقتی قاصدی که به طرف جایگاه میکا میرفت نزد او رسید به او گفت میکا 850 نفر چراغ سبز نشون دادن و گفتند که برو و با ارامیان بجنگ حالا برای اولین بار توی زندگیت بیا و با اونها موافقت کن. میکا گفت من چیزی رو که خدا به من بگه خواهم گفت. این در واقع برای اونها یک نبی ناخوانده، ناهمهنگ و غیرقابل تحمل بود که هر آنچه رو که حقیقتاً از خدا دریافت می کرد برای اونها میگفت. مهم نبود که به چه قیمتی براش تمام میشد. او باید ای برای رساندن پیغام خدا به پادشاهان اسرائیل و یهودا میشد. وقتی که میکا در قصر اخاب در حضور دو پادشاه با تمام شکوه و جلال اونها ایستاد اخاب گفت خب میکا نظر تو چیه آیا ما باید با عرامی ها بجنگیم و میکا گفت حتما این کارو بکنید عجله کنید پیروزی بزرگی نصیبتون میشه اخاب تعجب زده پرسید آیا تو حقیقت کلام خدا رو به من میگی و میکا جواب داد اگه میخوای راستشو بدونی من اسرائیل رو دیدم که مانند گله‌ای بی در تمام این تپه ها به طرز فجیعی کشته شدند و دیدم که شاه اونها کشته شده. اخاب گفت دیدید؟ من به شما گفته بودم. هیچ حرف خوبی از دهان او بیرون نمیاد. همیشه چیزهای بد میگه. بعد اخاب و یهوشفات تصمیم گرفتن لشکرهایشان را بر اساس نبوت انبیاء کازب برای جنگ با ارامیان هدایت کنند و به نبوت نبی خدا اعتنا نکنند. صدقیا همون نبی با شاخهای عجیب و غریب به میکا نزدیک شد و بر صورت او سیلی زد. صدقیا پرسید چطور شد که روح القدس منو گذاشت و پیش تو اومد؟ میکا چیز زیبایی به صدقیا گفت. او گفت اینک در روزی که به حجره اندرونی داخل شده خود را پنهان کنی آن را خواهی دید. بعد میکا معزه عزیمی کرد. میکا گفت خداوند را بر کرسی خود نشسته دیدم و تمامی لشگر آسمان نزد وی به طرف راست و چپ ایستاده بودند و خداوند گفت کیست که اخاب را اقوا نماید تا به راموت جلئات برآمده بیفتد و یکی به این طور سخن گفت و دیگری به آن طور تکلم نمود و آن روح پلید بیرون آمده به حضور خداوند بیستاد و گفت من او را اقوا میکنم خداوند وی را گفت به چه چیز او جواب داد که من بیرون میرم و در دهان جمیع انبیاء او روح کاذب خواهم بود. او گفت وی را اقوا خواهی کرد و خواهی توانست پس برو و چنین بکن پادشاه اسرائیل گفت میکا را بگیرید و او را به زندان بیندازید و نان بخور و نمیری به او بدهید تا من برگردم شکی نبود که وقتی صدقیا به صورت میکا سیلی زد حرفی که میکا گفت نبوتی از جانب خدا بود اخاب دستور حمله و جنگ با ارامیان را صادر کرد و میکا را به زندان انداخت و گفت تا آمدن من در آنجا بماند میکا فریاد زد دوستان، شما باز نخواهید گشت. اگر بازگشتید، پس بدانید که خدا با من حرف نزده است. اخاب و یهوشفات لشگرهایشان را برای حمله به ارامیها هدایت کردند. تصور میکنم میکا در زندان از گرسنگی و تشنگی تلف شد. چون که این آخرین خبری هست که درباره میکا میشنویم. در اوج نبرد با ارامیها ها، نبوت میکا تحقق یافت. لشگریان اخاب و یهوشفات مانند گله گوسفندان در سرتاسر دامنه‌های کوه به کشتار عظیمی گرفتار شدند یک سرباز آرامی تصادفا نیزه‌ای پرتاب کرد و از تنها جای آسیب پذیر زره اخاب به بدن اخاب فرو رفت. اخاب رو به سلاحدارش کرد و گفت منو از صحنه نبرد خارج کن من به شدت زخمی شدهام این هم تحقق نبوت میکا بود پادشاه کشته شد و سربازان قتل عام شدند بهایی رو که میکا پرداخت تا به جای خدا حرف بزنه ملاحظه کنید امبیوه بنام و نشان زیادی در کتاب پادشاهان وجود دارند مثلا در اول پادشاهان سیزده نبی هست که از او فقط به نام مرد خدا نام برده شده و این مرد خدا با پادشاه شریری به نام یرب آم مواجه میشه آم به سوی این نبی اشاره میکنه و میگه او رو دستگیر کنید و همین که دستش رو دراز میکنه دستش خشک میشه چون که این نبی از جانب خدا قدرت یافته بود بعد پادشاه از این نبی خواهش میکنه که برای او دعا کنه تا دستش خوب بشه. او نمیتونست دستش رو حرکت بده. پس نبی حرف یرب آم رو قبول میکنه و خدا از این مرد برای شفای دست پادشاه استفاده میکنه. وقتی در مورد این نبی میخونید متوجه میشید تمامی انبیاء خدا ترس قدرتی خارق العاده داشتن. اونها چیزی رو داشتن که در عهد جدید به اون فیض یا عطیه میگیم. کلمه یونانی برای عطیه کاریز هست وقتی فیض در زندگیتون کار میکنه شما کاریزما یا عطیه دارید بدون روح القدس و عطایای او اون مردان هرگز قادر نبودند کارهای خارقالعاده انجام بدند. اونها قدرت خارق ای از خدا داشتند که برای اونها کار میکرد به این دلیلی که در خدمات اونها معجزات زیادی رو میبینید بدون معجزات خارق خدا این انبیا نمیتوانستند با پادشاهان مواجه بشن ایلیا نبی بزرگ در اول پادشاهان هست. در باب هجده اول پادشاهان ایلیا ویژگی ممتازی داره. ایلیا تمامی قوم و انبیای دروغین اخاب و ایزابل رو به بالای کوه کرمل دعوت می و در اونجا بزرگترین معزش رو می کنه. ایلیا انبیای بل رو در مقابل تمامی قوم به چالش می و میگه یک گاو برای خود انتخاب کرده شما اولان را حاضر سازید زیرا که بسیار هستید و به نام خدای خود بخوانید اما آتش نگذارید. پس را که به دیشان داده بود گرفتند و آن را حاضر ساخته نام بل را از صبح تا ظهر خونده میگفتند. ای بل ما را جواب بده. لکن هیچ صدا یا جوابی نبود و ایشان بر مذبهی که ساخته بودند جست و خیز می نمودن. تن خود را مجروح می کردن, گریه می و هر کاری که از دستشون برمی انجام می دادن. و ایلیا ایستاده بود و اونها را تماشا می کرد تا اینکه حوالی ظهر ایلیا شروع کرد به مسخره کردن انبیاء اخاب. ایلیا این انبیاء رو می کرد و می میگفت به آواز بلند بخوانید زیرا که او خداست. شاید متفکر است یا به خلوت رفته یا در سفر می باشد یا شاید که در خواب است و باید او را بیدار کرد. اونها تا حوالی غروب دعا کردند و به کارهاشون ادامه دادند تا اینکه بالاخره دست از کار کشیدن بعد ایلیا خندقی اطراف مذبح خود حفر کرد و آنقدر بر مذبح آب تا آب گردا گردم از شد و خندق نیز پر از آب گشت بعد او دعای خارقلاده کرد ایلیا گفت ای یهوه خدای ابراهیم و اسحاق و اسرائیل امروز معلوم بشود که تو در اسرائیل خدا هستی و من بنده تو هستم و تمام این کارها را به فرمان تو کردم مرا اجابت فرمای خداوند مرا اجابت فرما تا این قوم بدانند که تو یهوه خدا هستی و اینک دل ایشان را باز پس گردانیدی آنگاه آتش یهوه افتاد قربانی سوختنی و هیزم و سنگ و خاک را بلعید و آب را که در خندق بود لیسید و تمامی قوم چون این را دیدن به روی خود افتاده گفتند یهوه او خداست بیداری عظیمی اونجا بود و بعد اونها انبیاء بل را گرفتند و ایشان را نزد نهر قیشون آورده و در آنجا کشتند ایلیا اساساً پیغام خدا رو برای قوم خدا آورد نه برای انبیاء دروغین اخاب و ایزابل ایلیا اون پیغام معجزه‌آسا رو آن روز با این کلام شروع کرد تا در میان دو فرقه میلنگید این مفهومیه که ما قبلاً مطالعه کردیم شخص مردد در تمامی راههاش بیثباته جنون روحانی مشکلیه که ایلیا اون روز با اون مقابله میکرد. امروز هر شبانی با این مشکل مقابله میکنه جنون روحانی این جنون مختص به ایمانان نیست وقتی ایمانداران بر طبق ایمانشون زندگی نمی کنند، اونها دو شخصیتی میشن. اونها دچار تناقض میشن. الیشا اینو لنگیدن میان دو فرقه میگه. به این دلیل به اونها گفت تا به در میان دو فرقه می لنگید. کتاب مقدس مطالب زیادی در مورد دو دل بودن داره. کلام خدا در مکاشفه باب به آیه 15 میگه اعمال تو را میدانم. میدانم که نه سردی و نه گر، و کاش یا این بودی یا آن، اما چون ولرمی، نه گرم و نه سرد، چیزی نمانده که تو را چون توف از دهان بیرون بیاندازم. کتاب مقدس میگه ولرم نباشید. شما نمیتونید دو ارباب رو خدمت کنید. کتاب مقدس همیشه در این مورد هشدار می‌ده. چون کسی که به دو ارباب خدمت می‌کنه، همیشه غمگین خواهد بود. ایلیا با این دوگانگی روحانی یا جنون روحانی مقابله می‌کنه. قدرت خارقلاده خدا بر مععزه ایلیا مهر تعیید می زنه. خدا با معجزه عظیم مععزه او رو تبدیل به بیداری روحانی عظیمی می کنه. تفاوت قابل توجهی بین ایلیایی که در باب هجده در کوه کرمل می بینیم با ایلیایی که در باب نوزده می بینیم هست. اخاب زنی داشت که اسمش ایزابل بود. ایزابل و اخاب هر دو بدون شک شریر بودن. کاذب اساسا انبیای ایزابل بودند روز بعد از اینکه که تمامی انبیاه او کشته شدند، ایزابل پیغامی برای ایلیا فرستاده و گفت خدایان به من مثل این بلکه زیاده از این عمل نمایند اگر فردا قریب به این وقت جان تو را مثل جان که از ایشان نسازم. وقتی ایلیا این پیغام رو خوند به بیابان فرار کرد و زیر درخت اردجی نشست. او دعا کرد و در دعا درخواست مرگ برای خودش کرد. ایلیا بدون شک مردی افسرده و شکست خورده بود. تصور کنید در باب هجده ایلیا پیروزی عظیمی داره اما در باب 19 او رو می بینیم که زیر درختی نشسته و آرزوی مرگ کنه. شما خواهید دید که این در مورد تمام انبیای بزرگ و های کتاب مقدس مثل یک الگو هست. اکثر اوقات وقتی خدا اونها رو به طور قدرتمندی به کار می‌گیره به نظر میرسه که شکست می‌خورن تقریباً به نظر میرسه که خدا می گه این قدرت من در اون مرد بود نه خود اون مرد فولوشن این رو اینطور شرح میده ما این گنجینه رو در ظرفهای زمینی داریم تا اینکه مشخص بشه این قدرت از خداست نه از ما چرا خدا گنجینه رو در این ظرفهای شکننده زمینی قرار میده به این دلیلی که خدا می‌خواد به تمام دنیا بگه که این گنجینه است که اهمیت داره نه ظرفی که گنجینه در اون قرار داره یکی از مشکلاتی که در اول پادشاهان 19 شرح داده شده اینه که ایلیا کاملا خسته بود یک تیتر مناسب برای باب 19 میتونه این باشه: تصویر خستگی. کلام داوود رو در مزمور 23 به خاطر بیارید: جان مرا تازه میسازد. او مرا در راه های ادالت هدایت می کند. ایلیا هم مثل داوود نیاز به تازگی جانش داشت. هر وقت که خدا با خستگی یکی از مردان بزرگش مواجه میشه، خدا به اونها نقشه‌ای میده که اونها رو از خستگی بیرون بیاره. خدا به اونها راه‌های عملی برای نیکوکاری نشون میده که گام برداشتن در اونها جان اونها رو تازه میکنه مثلا وقتی خدا ایلیا رو زیر درخت اردج ملاقات کرد خدا به او گفت ایلیا برو بخواب و خوابی عمیق و خارق العاده بر او مستولی گردانید خدا برای او غذا آماده کرد او رو بیدار کرد و گفت یه چیزی بخور ایلیا و او هم خورد و بعد خدا گفت باز هم برو بخواب بعد از اینکه که ایلیا برای دومین بار بیدار شد، قادر شد با قدرت العاده ای که خورده بود به مدت چهل روز قوت پیدا کنه. ایلیا از نگهداری معبدش قفلت کرده بود. یادتونه بهتون گفتم که وقتی من استراحت می کنم یا ورزش می کنم، بچه های من به کسانی که سراغ منو می گیرن می گن شبان مشغول مرمت معبد هست. منظورشون اینه که من در حال بازسازی بدنم هستم که معبد خداست. فکر می کنم خدا داشت به ایلیا می گفت که تو از نگهداری بدنی که به تو داده هم غفلت کرده ای. به تمام کارهایی که ایلیا در باب 18 هم انجام داده فکر کنی. کارهای جسمانی از جمله کندن خندق در اطراف مذبحش و 27 کیلومتر دویدن در مقابل عرابه اخاب که تقریبا مثل یک ماراتون بوده. شکی نیست که بعد از این همه کار انسان به لحاظ جسمانی قطعا خسته میشه. شه. راه‌های نیکوکاری که جان ایلیا رو تازه کرد راه های عملی بودن خدا گفت ببین تو موجودی جسمانی هستی تو نیاز داری بخوری و بخوابی ما میگیم که عیسی میتونه تمام نیازهای ما رو رفع کنه اما این به اون معنا نیست که ما نباید بخوریم و بخوابیم من بارها تجربه کردم که اگر به مدت شش ماه روزی فقط چهار ساعت بخوابید شروع به دیوانه شدن خواهید کرد بهترین دوستانتون به شما خواهند گفت که کمی برای خودت وقت بذار شما شروع به انجام کارهای نامتعارف خواهید کرد شما نمیتونید از معبد قفلت کنید ما گنجینه بزرگی داریم اما گنجینه معمولاً در ظرف گلی زمینی قرار داره و شما باید از اون ظرف نگهداری کنید این یکی از درسهای عملیه که ما از ایلیا در باب 19 اول پادشاهان یاد میگیریم من عاشق داستان ایلیا هستم خدا در خستگی او نزدش میاد و از او سوال زیبایی میپرسه در پیدایش باب سه سوال خدا این بود کجا هستی؟ در اول پادشاهان باب 19 اولین چیزی که خدا از ایلیا پرسید این بود اینجا چیکار می‌کنی؟ میکنی؟ آیا خدا از شما همین سوال رو پرسیده؟ من نمیدونم شما به لحاظ روحانی کجا قرار داری؟ شاید خدا به وسیله داستان ایلیا میخواد از شما بپرسه اینجا چیکار داری؟ نکته اصلی سوال اینه آیا شما واقعا در جایی که باید باشید هستید؟ میخوام باز هم یادآوری کنم که شما باید به نمونه‌ها و هشدارها در کتاب‌های پادشاهان دقت کنید. در این کتاب‌ها شما هشدارهای ترسناکی در زندگی پادشاهان شریر خواهید یافت. در کتاب پادشاهان سرمشخای بزرگی از زندگی انبیای خدا ترس، مخصوصاً انبیایی مثل ایلیا و الیشه خواهید دید. عزیزان یادتون باشه که ما بارها و بارها گفتیم که تمامی کتاب مقدس سودمند هست و این یقینا در این بخش از کلام خدا هم صدق می کنه. خدا از طریق شکسته پادشاهان شریر و زندگی انبیاب با ایمان به ما نمونه ها و عبرت هایی میده می ده. دعای ما اینه که این درس ها شما رو در ایمانتون تشویق کنن و شما این اصول ابدی رو در زندگی خودتون به کار بگیرین تا برنامه بعدی به عنوان یک فرزند خدا امیدواریم جسارت و وفاداری اون انبیا رو در زندگیتون تجربه کنین.